اشق محصول ترس از تنها ماندن نیست عشق فرزند استراب نیست عشق آویختن بارانی به نخستین میخی که دستمان به آن میرسد نیست برای ما اشق هیچیک از اینها نبود اما زمان با اقتدار خوفناک خیش مصمم است آنها را که در وادی عشق زمان را انکار می کنند لگد مال کند ما در جنگیدن با زمان کمی کوتاه آمدیم و چنین شد که توانست بر ما مسلط شود عشق گرچه از بطن شوریدگی می اما مثل عدد قانون پذیر است و باقی ما قوانین اوستوار عشق را لحظه ای از یاد بردیم اما این را هم یادت باشد گیل مرد وقتی خود عشق حاکم بود بحث عشق نبود فلسفه عشق نبود این همه از ماهیت و محتوای عشق گفتن نبود شبها را به یاد می‌آوری، شبها شبها پیش از آن که به خواب برویم چقدر حرف داشتیم که بزنیم انگار که حرف‌هایمان تمامی نداشت چند بار پیش آمد که طلوع را دیدیم و رنگ خواب را ندیدیم آخر چه شد که حال دیگر می و خسته و بی صدا می شبها دیگر شده؟ حرفها تمام شده؟ یا ما تمام شده ایم؟ جای عشق در این شبهای خالی و خلوت کجاست؟ این سوال من است جواب تو چیست؟ آنها به آنچه بودند اعتراضی نداشتند اما به آنچه می توانستند باشند می اندیشیدند. ایمنی نمیخواستند، بیمه نامه نمیخواستند، تزمینی برای آینده نمیخواستند. آنچه می‌خواستند فقط این بود که زندگی که عشق تعم آرمانی عشق و زندگی را داشته باشد. تعم تکههایی از شیرینی‌های های واقع انگوارای عزیز و دین نصفی را تعمی که بر حسرت انسان قلبه کند. آبی که به راستی یک تشنگی توصیف را فرو بنشاند یا حتی ننشاند اما باشد. یک کاسه آب یا یک چشمه کوچک نگاه کن گیل مرد دلاور چند بر ایام ما را به چنگ همه چیزهایی که از آنها وحشت داشتیم انداخته است یک نواخت یک نواخت گیل مرد کوچک اندام شکایت نمی کنم حیرت می کنم حیرت از اینکه چگونه ممکن است حتی عشق آن هم عشقی که نظیر نمی پذیرد. گرفتار روزمرگی کسل کننده ای شود که پیوسته می گفتیم اگر عشق با حضور همین روزمرگی ها عشق بماند عشق است سل راست میگفت: آنها ابداً از کسی یا چیزی گله نداشتند فقط از سایده شدن و پوسته ای شدن چیزی که نمی باید سایده و پوسته ای شود رنجیده بودند ما از زندگی مشترک مثل یک دست لباس استفاده کردیم ما زندگی را و عشق را یک دست لباس دانستیم زمانی که خریدیمش بود و زیبا و مناسب جذاب و توجه برانگیز خیره کننده در هر محفل و میهمانی آهسته آهسته ما کهنه شد سایده شد رنگ و رویش رفت از شکل افتاد مستعمل و بیمسرف شد چرا؟ چرا فرصت دادیم که زمان با عشق با زندگی همان گونه رفتار کند که با آن پیراهن سرمه تو کرد که من آنقدر دوستش داشتم حرفهای من است، شرایط من یکی نیست روزی هست که تو را دلجویه من نجات می دهد. روزی هست که مرا را های تو خلاص می کند گاهی من نیازمنده هدایتم گاهی تو اما آن سؤال بزرگ پیوسته باقی می ماند چرا به موج بلند زمان فرصت دادیم که قایقمان را در تن پیچان خیش بپیچد و فرو برد و آیا دیگر هیچ امیدی به نجات این قایق کوچک پریشان حال در آستانه غرق نیست؟ عشق یک عکس یادگاری نیست و یک مزاح شش ماهه یا یک ساله نیست. واقعیت عشق در بقای آن است، حقیقت عشق در عمق آن. و این هر دو در اراده انسانی است که میخواهد رفعت زندگی را به زندگی بازگرداند. من دختران و پسران بسیاری را میشناسم که تمام هدفشان از طرح مسئله عشق رسیدن است. عجب جنجالی به پا می‌کنند. عجب درگیر می‌شوند. اعتصاب غذا، تهدید به خودکشی، قرص‌های خواب‌آور، تهدید، گریه، سکوت، فریاد و سرانجام رسیدن. مشکلم با از همین لحظه آغاز می‌شود. وقتی هدف انقدر نزدیک باشد، گرچه کمی هم دور به نظر می‌رسد بعد از زمانی که برقاسا می دیگر نمی چه باید بکنند. با اولین شست و شوی لب پر شدن بشقاب بوی کهنگی گرفتن جهیز میمانند مانند معتل. قصد بی به هم را که ندارند. بی فرزند فرزند است، فرزند تکرار. این را باید می دانستند که رسیدن، پله اول مناره است که بر اوج آن از آن میگویند میگویند. برای بعد از وصل برنامه برای تداوم بخشیدن به وصل از وصل ممکن و آسان تن به وصل دشوار و خطیر روح برنامهای ای برای صدبندی قاهرانه در برابر خاطر شدن برنامه برای ابد. برای آن سوی مرگ برای بقای مطلق برای بیزمانی عشق عشق قیام پایدار انسانهای مقتدر است در برابر ابتضال با این وجود عشق یک کالای مصرفی است نپسندآز کردنی